داستان مادر کنیز یکی بود یکی نبود زن و شوهر مباشری بودند که تو مزرعه مهمترین عربابای شهر کار میکردن این زن و شوهر پنج تو پسر داشتند. زن بعد از راستوریس کردن کارای خونه و درست کردن غذا برای مردای خونه هر شب می نشست جور در خونه و با خودش ذکر می گفت. یه شب که داشت با خودش ذکر میگفت صدای جغدی رو شنید. جغده گفت خانم، ثروت رو کی میخوای؟ توی جوونی یا توی پیری؟ زن میگفت یا عیسی مسیح و تون علامت سلیب میکشید. همین موقع مردا از راه میرسیدن. پشت میز مینشستند و غذا میخوردند. زن بیچاره یک کمی حالش پریشون بود. شوهر و پسراش ازش پرسیدند چی شده؟ وری زن جوابی بهشون نمیداد. فرداشب وقتی دوباره شروع به ذکت گفتن کرد، دوباره صدای جغد رو شنید. جغده دوباره بهش گفت ثروت و کی میخوای؟ توی جوونی یا توی پیری؟ زن گفت یا مریم مقدس این کار شگون نداره و پاشد رو رفت تا قضیه رو برای شوهرش شریف کنه. شوهرش بهش گفت اگه یک بار دیگه برات اتفاق افتاد بهش بگو که من تو پیری سروت رو میخوام چون که جوانی خوب یا بد میگذره اما توی پیری یک آدم به آسایش احتیاج داره. خلاصه شب سوم وقتی که زن صدای جغد رو شنید که داشت بهش میگفت رو برای کی میخوای؟ برای پیریت یا جوونیت؟ بهش گفت خب بازم که اومدی من توی پیری سروتو میخوام. یه مدتی گذشت. یه شب شوهر و پسرهای این زن که دیگه از خوردن حبوبات خسته شده بودن، به مادرشون گفتن که برای فردا دلشون میخواد که آش سبزی بخورن. فردا صبح زن چاقوی خودش رو برداشت رفت و برای بچه هاش سبزی بچینه. مزرعه طرف دریا بود. هرچی جلوتر میرفت سبزیهای بهتری پیدا میکرد و میگفت چه آلی چه سبزی های معرکه ای امشب پسرا و شوهرم دلی از عذا در میارن. خلاصه هی برای خودش سبزی می چید. وقتی که کار سبزی چیدنش تموم شد، یهو چند تا راهزن از پشت سر سر رسیدن. زن بیچاره رو گرفتن و کشون کشون بردن به قایقشون و زدن به دریا. زن فریاد میزد، التماس می کرد که بهش رحم کنن و بذارن که بره. اما هیچ فایده ای نداشت. حالا این زن رو که داشت خودشو از گریه میکش بذاریم کنار و بریم سراغ شوهر بیچاره و پسراش. موقعی که مثل روزای قبل برگشتن به خونه، عوض این که مثل همیشه در باز باشه و غذا آماده، دیدن که مادرشون تو خونه نیست. از همسایه ها پرسیدن که کسی اونو ندیده، اونا هم جواب دادن که نه ما ندیدیمش. فکرشو بکنید؟ چه حالی بهشون دست داده بود؟ شب شد. پسرا و مرد خونه فانوسا رو روشن کردن و رفتند وسط دشت و دمن. فریاد میکشیدند و مادرشون رو صدا می تو همه یه چاها سرک کشیدند اما وقتی دیدند که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد برگشتن خونه و حالا گریه نکن و که گریه بکن. بعد هم لباس مشکیاشونو رو پوشیدن و سه روز برای مادرشون عزاداری کردند و از اونجایی که دنیا محله گذره بعد چند روز دوباره مثل سابق برگشتن سر کارشون دو سال از این قضیه میگذشت تا اینکه برای کاشتن گندم مجبور بودن زمین بزرگی رو شخم بزنن پسر و پیرمرد هر کدومشون یه جفت برداشتند و شروع کردن به شخم زدن همینطور که زمین رو شخم میزدن نوک خیش پیرمرد به یه چیزی گیر کرده بود چون تنهایی زورش نمی رسید، پسر بزرگش رو صدا کرد و بعد با هم دیدن که نوک خیش به یه حلقه آهنی گیر کرده زیر اون حلقه آهنی و سنگ بزرگ یه اتاق بود پسر گفت وای پدرجون کاش که می دونستی این زیر دارم چی می بینم اجازه میدی برم پایین؟ پیره مردم گفت نه بذار همونطوری بمونه شب برمیگردیم تا ببینیم قضیه از چه قراره و رفتن دوباره کارشون. شب وقتی که با رعیت ها مزرعی برگشتن برای اینکه چیزی به کسی ندن همه یه رو با دادن یه شربت خواباور به خواب عمیقی فرو بردن. پیرمرد مرد و پنجتا پسراش زیر نور فانوس رفتن تو مزرعه تا دنبال گنج بگردن اونجا هفت تا کوزه پر از سکه های تلا پیدا کردن همدیگر رو بر رو بر نگاه میکردن نمیدونستن چی باید بگن نه چی کار بکنن پیرمرد گفت حواستون رو جمع کنید الان دیگه وقت این نیست که وایسیمو و با همدیگه نگاه کنیم برید سریه گاری بردارید بیارید تا سکه ها رو با خودمون ببریم پسرا رفتند و یه گاری آوردن. همه گنچها رو بار اون گاری کردند و بعد هم بردن تو خونهشون قایم کردن. روز بعد پیرمرد و پسراش رفتن سراغ اربابشون و بهش گفتند که دیگه نمیخوان تو مزرعه کار کنن. چون دیگه دل و دماغ کار کردن براشون نمونده. همه رو تحویل دادن و یه سور مشریم به های مزرعه دادند و راه افتادن از اون شهر به شهر دیگه. اونجا لباسای کشاورزی رو دیگه تنشون در آوردن و لباسای تر و تمیز بوشیدن. یه خونه بزرگ خریدن، معلم مدرسه و معلم زبان گرفتن تا بهشون مثل اربابا درس بدن. پیرمرد طبق رسم اون موقعها موهاش و دم اسبی میبست و به لحجه اون شهر صحبت میکرد. حتی اسماشونم عوض کرده بودن. خلاصه، اگه کسی اونارو رو میدید، دیگه اونارو رو نمیشنخت. یه روز، هر پنجتا برادر رفته بودن به میدون شهر تا اونجا برای خودشون بگردن. اونجا بازار کنیزا بود، سیاه و سفید، زشت و زیبا. به محض اینکه که به خونه برگشتن برای پدرشون تعریف کردن. به پدرشون گفتن ما توی بازار کنیزای قشنگی رو دیدیم. اگه اجازه میدید یکی از اونا رو بخریم و به خونهمون بیاریم. پدرشون هم گفت: پس میخوان یه زن جوون بیارین تو خونه. نه. من بهتون اجازه نمیدم. و پسرام گفتند اگه یه کنیز پیر باشه میاریمش. پیر پیرمرد هم با پسراش به میدون رفتند. کنیزها رو نگاه کرد و یه کنیز پیر که بیچاره به خاطر رنج و کتک سیاه و کبود شده بود رو انتخاب کردند و آوردن خونهشون. برای این کنی صد سکه پرداخت کردند. زن بیچاره اونقدر لباساش پوره بود که آدم با دیدنش دلش براش میسوخت وقتی که اونو به خونه آوردن براش لباسای نو خریدن. پسرا طبق معمول شبا میرفتن برای تماشای تاتر اما پدر هیچ وقت بیرون نمی رفت. اون پیرزن فرکتادن وقتی میدید که پنج تا برادر بیرون می رن، شروع می کرد به آه کشیدن و گریه کردن. یه شب بعد از اینکه چراغ چراغا رو خاموش کردن پیرزن دوباره شروع کرد به گریه کردن. پیره مرد هم که داشت مطالعه می کرد کتابش رو بست و پیرزن رو صدا کرد. بهش گفت چرا وقتی بچههای منو میبینی آه کشی و گریه میکنی کنیز بیچارم گفت ارباب اگه میدونستین که من چه غم بزرگی تو سینهام دارم از همین سوالو نمیکردین پیرمرد روی صندلی نشست و از پیرزن خواست که براش تعریف کنه و زن بیچارهم شروع کرد به تعریف کردن داستان زندگیش من که کنیز نبودم من زن یه مباشر بودم. شوهری داشتم و پنج تو پسر. یه روز که برای چیدن سبزی آش به کنار دریا رفته بودم دوزده دریایی منو دزدیدن و از اون به بعد دیگه من خونوادمو ندیدم. پیرمرد یهو از جوش بلند شد و پیرزن رو بغل کرد. پس تو همسر منی؟ من همون مباشرم و اینا هم پسرای تو هن. ما فکر میکردیم که تو مردی. یه روز وسط شخم زدن زمینا یه گنج پیدا کردیم و حالا اون چیزی که اون جغده بهت گفته بود درست از آب در اومده. خلاصه، زن بیچاره بعد از پیدا کردن همسر و بچه هاش بعد از 17 سال دیگه به آرامش رسیده بود. همینجور که زن از رنچهاش تعریف میکرد پیرمردم از قصه از دست دادن زنش و ناراحت بودن پسراش برای پیرزن تعریف می کرد. همون لحظه پسرها از راه رسیدن. وقتی که پسرها پیرمرد و خدمتکار خونشون رو در حال ناز و نوازش کردن همدیگه دیدن، شاکی شدند و گفتن پدرشون سنگ خودش رو به سینه میزده اما پدرشون هم گفت پسرای من، این مادر شماست که سالها به خاطر داشتیم گریه میکردیم. فکرشو بکنید؟ پسرا با شنیدن این حرف چطور مادرشون رو بغل کردند و بوسیدن و گفتن؟ مادرجون، دیگه همه اون رنج و که کشیدی کافیه. از این به بعد فقط باید از زندگی درزت ببری. خلاصه. پسرا خدمت خونه رو صدا کردند و ازشون خواستند تا برای مادرشون لباس اشرافی تهیه کنند. بعد هم لباس اشرافی رو تن مادرشون کردند و از اون به بعد این خانواده با خوشی و شادی و با ثروت زیادی که به دست آورده بودن در کنار همدیه روزهای خوب و خوشی رو میگذروندن.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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی سانین مهران دوستی،